بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ﷲ الله ﷲ ﷲ ﷲ محمد ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ از نظر تعداد سه طاره شد. ما امروز در جلسه سوم هستیم. در جلسه دوم دو آخرین قسمت بحث ما راجع به چه بود؟ جماعت و تسلام. مراجعه چیو؟ اهم مباحث علم تجوید. آها، اهم مباحث علم تجوید. بحث اول سی بودند. مخارج الحروف العربيه. احسان، مخارج الحروف العربيه. حلو؟ ما سه تا بحث مهم داشته یکی یعنی بحث مخارج بود، یکی بحث صفات بود و یکی بحث صفات ذاتی و یکی بحث صفات عزیز. عرضی بود که بهش معمولاً به احکام تعبیر می کنن، احکام رو کنن یکی یکی انشاءالله همه این باحث رو پایی خواهی می یعنی وقتی ما این سه تا مبحث رو تمام کنیم بحث مخارج حروف صفات ذاتی حروف دو، صفات عرضی حروف این سه تا بحث را که تمام کنیم تجوید کلن میشه تمام و این کتابی همه همین ای که فیلن داریم میخوانیم همینگیشان میشه تمام درسته؟ هست ما یکی یکی این رو باید بخوانیم اول هست که مفارج و فروف العربیه اینجا یک متن رو اضافه کنیم خوب است بمیسیم که لغت العربیه نه نه نه تنه تفصیل هست توزيع بين خاص ثلاغه العربيه 29 فردا اللغه العربيه 29 قرآن، علی جزرگرآن، که لغت العربی، دسعتا و آره، ولی مخارجون مخارجون مخارجون مخارجون يجب يا ما قرئ من سوره يجب على قارئ الكريم على قارئ الكريم کریمه تعلمها تعلمها خسنویش نید؟ تعلمها نویشتیم؟ نعم، نویشتیم هر گطایشو نویشتیم؟ خیلی شما نویشتیم؟ آجیغامو، فی اللغت دل عربی تسعتون هم یا تسعتون, تسعتون؟ تسعتون، تسعتون، پس تسعتون میکنیم الوا بیره بایشو خب، اینجا دقیق کنیم یا بفترجمه کنیم دارم مخارج حروف عربی رو میکنیم در زبان عربی، بیستونو حرف هست قبل هم خوانده، حرف نه؟ گفته میشن چه البته در اونجا هستند. آمو چیزا گفته بودیم مثل بیستونو بگید تا بیستونو بگید. خب بیستونو بیستونو فرق نمیشه.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 تا ادم تکلم تکلم گفتن دیگه ادا کردن الان اشتباه کنیم تکلم نشه ماجا خودش تکلم هست دیگه شما ادا کردن فصیح گفتن همه دیگه تکلم حروفه برای ادا کردن خروف مخارج المخرج های است ما نوشتن نکنیم کار را که عادت نمین. ما خارج شو میفهمم ما خارج کن سگ جمع ما خارج. تكلم هم ماندنش نوشتن نکنیم اینا خودشان نکنیم. اینارم میفهمم خدا, خدا این زم خدا خوشت که دیگه این وادار این نکنیم کامنش زدیم نیست. فی لغت العرب این لغت هم کمی دنی. فی لغت العربیت یکصد و عشرون عربی بیست حرف است. ولی تکلم حروف برای علا کردن یا تکلم حروف مخارج و مخرج هاییست یجی است علا خاره قرآن کریم برکی؟ برخاره قرآن کریم چیش ها آمو هم کلگشم تقریبا فارسی ما است. شماست پس ترجمه شما تا اینجا شد تمام؟ نه، خیلی دادی. حالا ادامه شما تعلم هو و مختن بل قرش واجب است که بیاموزیم بله کسی بله. که قرآن می مخواه تلاوت کنه باید مخارج حروف را چه بیاموزد چرا بیاموزد به خاطر که حروف رو از مخارجش ادا کنه نم. از مخارجش ادا کنه بله خب و تو توجد مخارج الحروف بقیه همشنو ده خط بعدی و تو, و تو جدو، مخارج خروصی، مخارج خروصی، في ثلاث فی في معناییه، فی سه مخارج علم. مخارج ولی مخارج مناطق فی بالذات بالصوت مناطق يا الحلق الحلق الفرق واللسان والشفتين آره متشکرم متشکرم. سه سه. خب، ما گفتیم که کل زبان عربی دارای مخرج است درست؟ و تو جدو، مخارج و خروفی، به وجود می آید یعنی هست مخرج های در تلاف مناطق در سه منطقه مناطق جمع منطقه کل مخارج حروف در سه منطقه هست منطقه اول، حق؟ زبان زبان، سومش لبها برای شد؟ و شفت زبان و شفت هایست لبها لبها و زبان یعنی هر کس لب حرف تمام شد تا اینجا؟ داره داره <معنام> حالا بگیم مخارج حروف در چند منطقه هست؟ در سین منطقه حالا ادامه شد و جدو این باقی زمین بله ویو فی کل منطقه فی کل منطقه منطقه منطقه من هدیه خویش این عدد من المخارج منطقه مجاور آه فی کل منطقه عدد من المخارج من المخارج خو خب. و در هر منطقه تعداد از مخرجه ها هست یوجدو هست و در هر منطقه تعداد از مخارج باوجود می‌کنه یوجدو باوجود می‌قاید هست ام کلکشن یک کنه عدد یا عدد تعداد عدد تعداد موکنه؟ یوجدو باوجود می‌قاید یا هست می‌کنه و اینجا به کل منطقه این عادده من المخارج باوجود در هر منطقه تعداد از مخرجی ها ما سه تا منطقه مخرجی داشتیم خب؟ منطقه اول ما چه بود؟ ها. در هر یکی از این سه تا تعداد از مخرج های دیگه هست خب؟ یعنی هر کدمش دست و دست دسته دست هست درست؟ پس ما منطقی اول ما چی بود؟ حل. حل. حلق. ها. اول ببینیم که در حلق چه چند مخرج و چه حروف است. درستو؟ اینو چیکو کنیم اجازه رو؟ عدد بنو کنیم؟ آ عدد بنو می اول برای من. اول آوا ل بود؟ حل. حلق. ال حلق. وفيه فیه سلطت تو مخور جن. و نیست بله فیه تلاتتو مخارجی. تلاتتو مخارجی. سلسطو یا سلسطو يا افضل حل اول اول ظهر اقصى وتخرج منه وتخرج منه يا معلم من هر بوجا يا وتخرج منه الهمزه والهاء الهمزه والهاء وصوتها اصلا وتخرج منه الهمزه والهاء ؟ ها خوال و هوه interface اه، خوشح ها پس اول مکان ما حلق بود، میکنیم. در حلق، سه مخرج وجود دارند. فیه یعنی فی در اون حلق، سلاتت تو مخرج، یعنی سه مخرج هست. درست شد؟ مخرج اول ما اقصى الحلق، یعنی دورترین قسمت حلق. و تخرج و خارج میشود، یعنی از ام اقص حلق الحمزه و والها، و ها. یعنی از ماما خارج میشه یعنی هر قذاخر هر کبلو آره آره حمزه و ها ها ها یعنی از این حالت خارج می شود منو یعنی از این نقص الحال حمزه و ها انا ها کا تم نوشون ده میگیم درسته ها میگیم که عادت حمزه و ها سعی کنیم، این را بازدگونی علا کردنش تعداد از خروف رو میخانیم ولی اینجا اینا چون ساده است شاید نحوی علا کردنش را نخواهیم ایس، ما شما دایم هی که میگیم در فرسی علمی هی میگیم هی دیگر ایش نمیگیم، هی یک چشمه نمیگیم نمیگیم دایم هی دو چشم را میگیم مثلا اگر میگیم که چی نام نفر اگر اعنوان منفر هست نفر مگه محمدالی؟ احمدالی بیفی صادق منشاء دارهش؟ مثلاً محمدش میگیم؟ آره او بیفی. معمولی معمولی معمولی محمد، معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی دائیم دائما تقریبا ما و شما در فارسی وقت خیر میگییمع نمیه دایم او هی دیگر رو ادا نمیکنیم بنابراین لازم است بر ما که ادا کردن اون ها را یاد بگیریم مخصوصاً خانم ها وقتی ادا میکنن یهع نمیگیر بنابر بنابراین لازم است که دقت خط کنیم اون حی رو باید یادی رو مثلا محمد رو باید محخمد تون محمد من <تصفيق> <تصفيق> حش ده فهمم. اجازه ده محمد دهی حل کنیم. ما گفتیم که معاملات bagus نام همه. می گه این میشه. امروز است تا بعدا ما هستا هستا می خب وقتی حمزه میگیم گه دقت چه میگه. وقتی حمزه صدا کاملا آزادی هیچ چیزی درمی رویشی رو نمیگرم اح اح اح صدا کاملا آزادی عم هیچ چیزی پیش رویشی رو ها ها هم که مگیم صدا کاملا آزادی ها هان نه هی چی شاد ها صدا کاملا آزادی مگیifiersی ها ها درست؟ اگر صدا در ادا کردن هی اگر, اگر, اگر, حموان... اگر صدا را بندش دادیم، شد اگر بندیش دادیم هی میشه، هی. اگر صدا را بندش ندادیم هی میشه، کلیم میشه. تقریبا میشه گفت تفاوت بین هی و هی، در همون گرفتگیش اگر صدا گرفته نشد هی میشه، اگر صدا گرفته شد هی میشه. هون از یواجه که طرف شما خوش مود اینو به زبان آره درست آره پس میشه خود دقت کنیم ما بین حال کو من چی قر چی توری می خوامیم دقت کنه چه میگیم شما هم می تونید بخونید ان شاء الله اینم هيا اینم پی هست درست دقت کنیم اقصل حال اگر ما بگیم اقصل حال خلاص برسول، اکسل حلق, وتخرج من حل حل حلق وتخرج من حل و تخرجون من هل حمزه نمین هل حمزه برسول اکسل الحلق و تخرجون من هل حمزه و الها به اون وقتی ها راحت شد ای اول مخرجی بود که خواندیم از منطقه اول منطقه اول چی بود خلق خلق اقس... در خلق سه مخرج هست مخرج اول اقصل حال درست از اقصل حال بعد حروف دان شد ام از هشت یا ۲۹ از ۲۰۰ دوشه کنده برست چند آیشه مانده؟ ۲۷۶ خب، آلا ادامه شه دو وسط خلحلق چه وسط اولش اقسل حلق بعدش وسط خلحلق درست؟ و تخرج من حل. و تخرجو منه, منه العين و الحاق منه العين و الحاق منه العين والحاء ين هو لاينو ها سين هاكو ها حمزه خب، نویشتیم؟ این دیگه ترجمه شو میدانیم واسد حق واسد بعد این ترجمه کنیم و تخرجمیم بل عین و الحق از اینجا خوبش عین و خوب خوب کنیم کهشتر گفتیم که وقتیم را راحت بگذاریمشه آه یعنی حامزن اگر هیچ را ملاقاتیم پا راحت که گفتیم پا میشه اگر که را گرفتیم آه وقتی ساداش گرفته شد میشه عاین راین میشه هیم همینطور وقتی ساداش گرفته شد میشه هیم فهمیدی پس اگر عاین را همی آزاد بگذاریم عین نمیشه میشه همزه خیر اگر آزاد گذاشتیم حیر نمیشه میشه پس تفاوت بین حمزه و عین تقریبا در گیرفتگی است عین حالت ارتعاش داره آم. اگر اشتباه نکنم و ه و حیر در گیرفتگی است صدار بيغثاي. اگر صدا رو آزاد می‌گذاریم میشه ه، اگه صدا میشه خب. حالا نانتچو و غرهم. بخون ارم. نانا بخون. بس من بخون. حرف ببین حرف هفت نه آزاد خوب شد. ام ها. بیکن ها. ها. ها. اگر آزاد میشه خود دکتر خب، پس بنابراین مثل این است که دارین این مخارج رو می‌خوانیم شاید از این دوار جد لازیم هم نباشه اوصا و فحبه هم نشد که خواندیم قرآن رو که خواندیم باید بین بسم الله الرحمن الرحیم این حی رحمان الرحیم و حی الله باید متفارود باشه دیگه حالا، <سؤال> آزاد پدامون شویم حی رحمان الرحیم از همین خواهد دیفیزیون همون رو باید که حیه الله آزاده اره حیه رحمان رحمت نزدیکه هر دوتا هر دوتایشون حرفی است پس از وسط حرف حرف عین و حرف خ خ خ خ خ آزاد بگذاری میشه، چی میشه؟ خمزه وقتی ببین وقتی میخواهیم بگیم عین یک حالت گیروز مانند در حرف درست اگر ساده آزاد میشه؟ عین عین بین عین و عین خیلی هست دیگه نیست؟ فرق بین این و عین. عاین و خب، اینجا خوب, خوب شد یک چیز بین میسیم با شما خب؟ ببین، اگر بقید میکنم؟ اگر بگیم عاین، خب؟ معنیش چشمه هست آره. معنیش؟ در خب؟ اگر بگیم عین خب؟ عین اگر بگیم معنیش کجا هست؟ خیلی تفاول میشوند، برستان؟ این تمام تا اینجا؟ نه. دیگه دیگه خب، اول چی بود؟ چند مخرج دارش بود؟ اولش؟ دومش؟ أدنى للحلق عدنا للحلق عدنا من كل غير والخاء و دارم شنیدم که وقتی شروع می‌کنیم واتا واتا خروج و لغایی ول و لغایی ول و تخرج منه الغين و الخو تمام شد انجام و تخرج منه الغين و الخو خب ببینin غين و غين ايشان خه دکتر میکنید آزاد آزاد شد میشه ها اگر گرفته شد میشه ها اگر خریش بخراش دیدگی هم بهش پیدا شود نشہ ها تفننی کنیم می بنان ما استفاده کنیم ها یا تکثر کن ها ح خ تکتا فوک آزاد, آزاد. گرفتگی داگی خیل، خراش داگی خیل درست؟ عین باقی پس کلیش چند حرف، تا شد؟ شش حرف حلقی شش باید اینور عین عین عینور برست، آخیش در رنگ مو برین سعید میشه آمزه، آمزه، آمزه، آمزه، آمزه، آمزه، آمزه، آمزه، آمزه، آمزه برست؟ خب، اون رو برای از اینزه گفتیم که یک شعر اینچونینی هم از بازگرفاس در یاد بسپاره میدهست بس کاریم بس خواهم؟ خب؟ تا هنوش چند حرف رو خوندیم؟ <تصفح> شش از شش کم کنیم، چند میمانند؟ بیست و بیست خو منطقه اول ما بود؟ خلق منطقه اول از،, از چند مخرج شد؟ سه سه شد دیگه اقس الحلق، وساط الحلق؟ آقنا آلح. خب، اول شد خلاص خب و والبلاد اللي قريه في شمال خو قريه منطقه اولت خلاص خب oh. منطقه دوم <evet> ناس ني حسب خلاص دار المقارئ مخن دغه بدان اينو ویني چی؟ الله يسلم الله Absolent les zones. ای را داخل قوس یک چیزم اضافه کنیم قریب من الحلق چونه؟ من الحلق آره آره. نوزنگ حلق آره، نوزنگ حلق لسان قریب من الحلق. یبا منجوران قریبان خریب, هست که قریبان میگن قریبان هست که چرا قریبان قریبان من و تخرج منه و تخرج می‌کنه قبل از دیگه و تخرج می‌نوه آل قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف حلق، چند مخرج داشتیم؟ سه, سه مخرج. در لسان ده مخرج داریم خواه؟ متوجه شدیم؟ از این ده مخرج، مخرج اول ما اقسل لسانی هست نزدیک به حلق خواه؟ اقسل لسان،, لسان؟ نزدیک به حلق از اونجا حرف قاخ ادا میشه، قاخ درست شد؟ آره؟ برقیشون هم اداه فکر و امروز همی مقدار بحث باشید. و الله علی <تصفيق> سیدنا محمد و